Auw Auw Auw Auw وانی فارسی بسم الله الرحمن رحمن الرحیم جگره این سلام سلام سلاوی گرمگورو گش و جوانی ما ای و بیسترانی خوششویست با برنامه که دیکه لزنجیر برنامه وانه فارسی حتینه و خزمتیه و برزن. چون برزن باشن، انشاءالله که باشن و جیان به خوشی و کمرانی در برنامه سر. اگر گوگری ام زنجیر برنامه بوبن به دلنیای و حصد کن بزنن امرو بشی نو خوی خند کرن چه باسه. رامین دیهوه سره که بازار بداد بو شد کریم. او بنيازب چه بو سوپر مارکت. بلان تانیایا. لبراوه دا لای تلای محمدی هوریو هاو منزلیو لی دا پرسی آیا دا توانه لم کار دا نا. اگر دا بزنن امر اوان بوشت کرین دا نا باشتر وایا لگال بن. سرتا چند و شو دستا واجه نوه. امروز امروز امرو بعد از ظهر بعد از ظهر بیکار بیکار بیکار من من من من نیستم من نیستم من نیم تو نيستي تو نيستي تو ني ام شاب ام شاب امشوا امشوا چطور چطور چون چون اره آره آره فکر می کنم فکر می کنم پموایم چرا؟ چرا بچی برای برای بو بو خرید؟ خرید کرین وقت وقت کات، تو داری؟ تو داری؟ تو حتی؟ نه نه نه Ман недарам. Ман недарам. Ман неба. Ту недари. Ту недари. Ту нета. Чон. Чон. Чон. man daram man daram men hama dars dars vana u u au u nist u nist او نیا او ندارد او ندارد او نیتی ب ب بو کتابخانه کتابخانه کتابخانه فردا فردا. سبینه ما می رویم ما می رویم اما در چین؟ چطور است؟ چطور است؟ چونه. خوب است، خوب است؟ خوب است؟ پس، پس؟ پس؟ Kawataa. ایسا که كا وشکن و معنی کردکان با بابزنین رامین و محمد دلان چی؟ رامین و محمد لها دکه خویانده خریکی درس خوندنن کرامین رامین پرسیاری محمد تو امروز بعدازظهر بیکاری محمد تو امروز بعدازظهر بیکاری؟ نه بعدازظهر بیکار نیستم نه بعدازظهر بیکار نیستم تو بعدازظهر بیکار نیستی امشب چطور؟ تو بعدازظهر بی کار نیستی امشب چطور؟ آره فکر می کنم چرا؟ آره فکر می کنم چرا؟ تو برای خرید وقت داری تو برای خرید وقت داری؟ نه من وقت ندارم نه من وقت ندارم چرا وقت نداری؟ چرا وقت نداری؟ چون من امشب درس دارم. چون من امشب درس دارم. سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟ سعید چطور؟ او امشب بیکار است؟ نه او امشب بیکار نیست. نه. او امشب بیکار نیست. سعید هم برای خرید وقت ندارد. سعید هم برای خرید وقت ندارد. نه. او امشب به کتابخانه می رود. فردا به خرید می رویم. چطور است؟ نه. او امشب به کتابخانه می رود. فردا به خرید می رویم. چطور است؟ خوب است. پس ما فردا به خرید می رویم. خوب است. پس ما فردا به خرید می رویم. محمد و سعيد نتوانم بچن بو شد کرين. لبراو محمد درسي هيا و سعيدش ده هيا بچه بو كتب خانه. لبراو رامين پشنهارا كي محمد قبولده كا كي پكو بچن بو شد کرين. هم جارش گوله و تويجي اوان را با ورگراني كردي. محمد تو امروز بعد از ظهر بیکاری محمد تو امرونی و رو نه بعد از ظهر بیکار نیستم نه دانی و رو نیم تو بعد از ظهر بیکار نیستی امشب چطور تو دانی و رو امشو چی آره فکر میکنم چرا آره وابزانم. زنم بو چی؟ تو برای خرید وقت داری؟ تو بوشت کرین وقتت هیه؟ نه من وقت ندارم نه من وقتم نیا چرا وقت نداری؟ بو وقتت نیا چون امشب درس دارم لبروی که امشو درسم های؟ سعید چطور؟ او امشب بیکار است سعید چی؟ او امشب بیکاره؟ نه او امشب بیکار نیست نه او امشب بیکار نیا سعید هم برای خرید وقت ندارد سعیدیش باشد کرین وقت نیا؟ نه او امشب به کتابخانه خانه می روید فردا بخرید می رویم چطور است؟ نه او هم شوده چه با اکتب خانه سبه ده چین بواشد کرین چونه؟ خوب است پس ما فردا به خرید می رویم بشه کوابو سبه نده کریم باله بو تو جكاتان بيستوا اگر حز دکن بزنن ايي اوان پيكو دشن بو شت كرين يانا و ويكا چي دكرن قبو برنامه ده تو يواني فارسي راكرن دلنيام و شو رستي بكالك فيل دبن تابي گشن ويد وارا حمولكتن به خوديگارت اسرم هر بشين به و شادي